آیا دولت‌ها میتونن بیت کوین رو سوالی که خیلی وقت از من پرسیده میشه و قرار توی این اپیزود بهش برسیم. سلام، سید مهدی هستم. من قرار توی این اپیزود از سری کتابخانه صوتی بیت در خدمت شما دوستان عزیز باشم و این مقاله رو با هم بررسی ترجمه این مقاله توسط کانال زنجیره انجام شده و توی سایت منابع فارسی بیت هم منتشر شده. وقت پیش اومده یه مطلب یا یه پروژه جالب رو می و پیش خودمون میگیم کاش میتونستیم همه این چیزهایی باحالو حال و پروژه های رو بررسی کنیم و ببینه میشون یا یه مطلبی رو می خونید و دوست دارید که منابع نزدیک به پیدا کنید یا سرسشون رو پیدا کنید و بیشتر راجعشون بدونید ولی فرصتشون نداره رو بی خیالش میشید. شاید به خبر داشته باشید ولی برای اون دسته از ازدانه که خبر ندارن میخواام یه پروژه خیلی باحال معرفی کنم که این کاربراشون انجام میده اسپانسر فعلی، کتابخانه صوتی بیت کوین پروژه هزار چیزه. هزار چیز میاد و تمام پروژه های مالی آموزشی و, و چیزهای باحال حوزه کریپتو رو در میاره و به صورت خلاصه توی سایتش معرفی میکنه دامنه سایتشون با همین اسم در دسترس و میتونید اونو پیدا کنید. پیشنهاد میکنم حتما یه سری به سایتشون بزنید. بیتکوین از دوازده سال پیش که ساخته شده تا کنون شکست ناپذیر بوده. قیمتش از پنج دلار به 50 دلار، 500 دلار، هزار دلار و 50000 دلار جهش کرده. تعداد کاربران جهانیش به 100 میلیون نفر نزدیک شده. امنیت شبکه، تعداد توسعه دهندگان و برنامه های جدید به بالاترین حد خودش رسیده. چندین و چند شرکت بزرگی مثل تسلا و اسکوار بیت کوین رو به لیست سرمایه‌های خودشون اضاف کردند. این موافقت جهانی بین‌المللی که برای متوقف کردن بیت کوین هرگز تلاش نشده. در واقع این پروژه پول دیجیتال از انواع و اقسام حملاتی که رو به مخاطره انداخته جان سالم به در برده. دو محور اصلی حمله همیشه وجود داشته. یک حمله به شبکه، چه به نرم افزارش چه به زیرساختهای سخت افزاری و دوم حمله قانونی به کاربران بیت کوین. اما قبل از اینکه این حملات و علت شکست اون‌ها رو ارزیابی برای اون دست از عزیزانی که نمی‌دونن، بیام یه خیلی مختصری از بیت کوین رو بگیم. در چارده دیماه هشتاد یک برنامه نویس ناشناس با نام مستعار ساتوشینا کوموتو شبکه بیتکون رو راه اندازی کرد. یک شبکه مدباز اقتصادی با هدفی بلند پروازانه. جایگزین کردن اقتصاد مبتنی بر بانک های مرکزی با یک سیستم غیرمتمرکز، همتا به همته و بدون قوانین قضایی. این سیستم از یک سری توکن ها استفاده خواهد کرد که قابل برنامه نویسی هستن را حدود زیادی قابل تعویز پذیری هستن و میتونن به شکل یک پول الکترونیکی خرج بشن یا به شکل تلای دیجیتال ذخیره بشن این توکن ها با یک برنامه ریزی تقریبا غیر تغییر تولید و بین زیر از کاربران که برای امتر کردن شبکه انرژی مصرف نکنند، به شکل پاداش میشه. در ابتدا همانطور که انتظار می رفت بیشتر مردم این پروژه مشکوک بودن و تعداد کمی بشه همیت دادن حالا نماذج تراشه برای ساختن پول الکترونیکی انجام شده بود که همشون شکست خورده بودن. هیچکس نتونست بود روشی برای ضرب سکه ها به شکل غیر متمرکز و بدون امکانه تقلب و فساد پیدا کنه. یان که بتونه روشی پیدا کنه که پولی بسازیم بدون اینکه دولت ها جلوشو بگیرن. اما جامعه کوچکی هول بیت کوین تشکیل شد که دقیقاً می‌خواست همین مشکل رو حل بکنه. با ساتوشی و هالفینی این گروه از تاپوشکن ها مدت یک سال به تفکر پرداختن. با هم حرف زدن نرم‌سرا رو توسعه دادن و از کامپیوترهاشون برای ماینینگ استفاده دکردند و در اون زمان هر ده دقیقه 50 بیت کوین جایزه به دست می آوردند بیت کوینی که ارزشی نداشت. بالاخره کسی پیدا شد و به این نتیجه رسید که اینها ارزش دارند. در 1 خرداد ماه 89 لازلو هانیتز 10000 بیت کوین برای خرید دو عدد پیتزا پرداخت کرد. می مبلغ پرداخت رو به ازای هر دونه پیتزا یک سنت آمریکا بدونیم. هیچکس اون زمان نمیتونه حد بزنه که این پرداخت در آینده اینقدر گران حساب بشه. امروز این پرداخت بیشتر از 500 میلیون دلار ارزش داره. از همون روزهای اول استخراج بیت کوین یا ماینینگش با کامپیوتر خانگی و ماجرای اسکیل رود یا همون جاده ابریشم که سایت مبادله مواد مخدر در آمریکا بود، بیت کوین تبدیل به یک پدیده عجیب شد. هیچ کس نمیدونه استاتوش چه کسی یا چه کسانی هستند، اما اگر این آفریده اونها امروز تبدیل به یک شرکت می‌شد، اکنون از ده شرکت با ارزش دنیا به حساب می اومد. امروز جامعه طرفدارانش از تعداد انگوش شماری از انسان‌های ناشناس که در مسیج سایبربانکها سایبر بانک ها فعال بودند به انسانهای معروفی مثل مدیر اجرایی توییتر آقای جک دورسی، مدیر اجرایی تسلا آقای ماسک، پروفسور هاروارد آقای نیال فرگوسن، مدیر اجرایی فیدلیتی آقای ایبی جانسون، یا لینزیلوهان بازیگر، سولجابوی خاننده یا تونی هاوک اسکید باز. و پاول جونز سرمایه گذار گسترش یافته. همچنین یک کارکتر یونیکود خاص خودشو داره و یک کنفرانس سنتی که روی چگونگی افزودن بیت کوین به سرمایه شرکت کار میکنه بیشتر از 6000 تا کمپانی رو جذب خودش کرده و البته دانشگاه MIT یک مرکز تحقیقاتی برای کار روی امنت بیت کوین رو اندازی کرده. بازارهای بیت کوین تقریبا همه جا و در همه کشورها و همه مناطق بزرگ شهری از زمین سر در آوردن. تریدر های معامله گرن بیت کوین تقریباً در همه جا از کاراکاس گرفته تا مانیل و مسکو مشتاق به خرید بیت کوین هستند میلیون ها انسان در نیجریه، آرژانتین، کوبا و حتی ایران خودمون و فراتر از اینها اکنون از بیت کوین استفاده کنند تا از مرزهای محلی خودشون فرار بکنن و پولشون رو در یک سیستم با سابقه یه حفظ ذخیره ارزش ذخیره کنن چیزی بهتر از نیرای یا بولیوار یا ریال ایران اونها میتونن بیت کوین هایشون رو با استفاده از یک کلید خصوصی مثل یک پسورد کنترلش این کلید خصوصی رو میتونن در تلفن همراهشون یا یک فلش یا یک کاغذ ذخیره کنن یا حتی حفظش کنن. البته مترجم هیچ از این روش ها رو توصیه نمیکنه. منم همینجور. و بدین وسیله برای خانواده و دوستانشون در سراسر سر زمین بتونن پول بفرستن. بدون اینکه نیاز باشه از هیچ نهاد قدرتی اجازه بگیرن. رسانه های غالب فعلی معمولا بیت کوین رو به شکل نمونه وحشت نکتری از ماجرای پنی استاک یا ماجرای گل های لاله نشون میده یه چیزی مثل ماجرای بورس نقددن نوع خودمون. اما در واقع بیت کوین یک پروژه سیاسی که پایه های سیستم اقتصادی که در مجمع جهانی اقتصاد طرهاریزی و رهبری شده رو مورد هدف و حمله قرار داده. این حمله به نحوی بود که همه از جانت یلن و کریستین لاگارد اعلام نگرانی و ترس کرده و درخواست کردند که براش قانونگذاری بشه. شاید براتون سوال پیش بیاد اینو کی هستن؟ جانت یلن اقتصاددان و وزیر فعلی اقتصاد ایالات متحده و رئیس فدرال رزرو از سال 2014 تا 2018 بوده. کریستین لاگارد هم سیاستمدار فرانسوی و رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا است. خودانگهات باید بدونید یکی از راه های اعمال و نگهداری قدرت در دولت‌ها چاپ پوله. در روش بیت کوین، زر و چاپ پول بدون دخالت دولت ها انجام میشه. حالا سوال اصلی اینجا چرا دولت‌ها و شرکت‌های خیلی بزرگ اون رو متوقف نکردند؟ و اگر اونها تلاش کنند در آینده نزدیک به بیت کوین حمله کنن، این حمله به چه شکلی خواهد بود؟ درباره اینکه چطور می‌تونیم به بیت کوین حمله کنیم، حدس و بسیاری تو اینترنت وجود داره، اما واقعاً تعداد کمی درنگ کرده و بیان فکر می‌کنن که چرا بیت کوین متوقف حت بیت کوین آنقدر کوچک نیست که بگیم دولت متوجه و نشودند. نشدن تلاش های قبلا به همین موازاد انجام شده بود مثل ایگول یا یالیتی Reserve قبل از اینکه حتی به 10 میلیارد دلار سرمایه در بازار برسند توسط دولت ایال متحده متوقف شدن پس هر روزی که بیت کوین زنده میمونه قوی تر میشه و محور مختلفی که میتونیم برای حملش استفاده کنیم روز بر روز کنتر و کمتر میشه یکی از دلایل جان سختی بیت اینه که یک پدیده غیر متمرکز جهانیه بیشتر ماینینگ بیتکوین بیرون از ایالات متحده و در چین و آسیای مرکزی اتفاق میفته اما به نظر میرسه بیشتر خریداران و صاحبان درازمدت در بیت کوین افراد حقیقی و حقوقی اروپایی و آمریکایی هستند از طرفی توسعه دهندگان هسته نرم افزاری و کسانی که گرههای های شبکه رو در اختیار دارن در سراسر سر دنیا پراکنده شد. حتی با نفوذن فرد در, در بیت یعنی مخترع اون دیگه اهمیت نداره کی هسته. حتی ممکنه مرده باشه. برنامه‌نویسی، ماینینگ زیر و بازارهای مبادله بیت از هم مستقل هستند و در حوزه‌های قضایی متفاوت و گاه متقاسم وجود دارند. اغلب اینها توسط افراد ناشناس یا شبه ناشناس داره میشن که فلسفه ها و اهداف متفاوتی دارن و تنها چیزی که همه اونها رو متحد نگه میداره اینه که بیت کوین رو زنده نگه بدارن برعکس تقریبا همه رمرزهای دیه در این شبکه پاشناشیل یا چشم اسفندیار ندارن چشم اسفندیار یعنی اون جایی که بتونیم با ضربه بهش کل سیستم از بین ببریم بیت کوین ویتالیک نداره، بنیاد اتریوم نداره مانند تطور بانک مرکزی هم نداره هیچ دفتر باشکوی در سان فرارسسکو یا تیم حبوخه از وکلای مجرب ندارد های مدیریتی نداره هیچ پشتیبان سرمایه گذاری نداره هیچ استخراج اولیه هم نداشته و هیچ گروه کوچکی از مدیران یا نهنگهای بازاری که بتونن بازار رو خیلی دستگاری بکنن ندارند در بیتکون شما میتونید قوانین رو تغییر بدید؟ نه مهم میث که چه خبییت کن دارید؟ شما نمیتونید پول جدید چاپ کنید، نمیتونید سانسور کنید نمیتونید دزدی کنید یا مانع استفاده دیگران بشید. در واقع بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا یعنی دولت ایالت متحده با رهبری وزیر اقتصاد وقت خودش استیو منوچین در ماه دسامبر سال 2020 حمله به شبکه بیت کوین ترتیب داد. با این, که این حمله به طور خاص قوی نبود اما به یک حمله بود. در این حمله دولت می‌خواست های آمریکایی رو مجبور کنه که اطلاعاتی بیشتر از اونچه که نظام بانکی متعارف از مشتریانش جمع می‌کنه از صاحبان بیت کوین که بیت از صرافی خارج یا وارد کیف پولشون جمع کنه. بدین مسئله خاص داشتن اطلاعات بسیار تری از جریان جابجایی بیت کوین برای نظام نظارتی آمریکا فراهم کند اما این تلاش برای سرکوب توسط یک ائتلاف از مخالفان شکست خورد و منوچین اکنون رفته قانونگذاران جدید ایالات متحده ممکن کمتر کمتر خوش‌ونتمز برخورد کنند مثلا رئیس جدید اوراق بهادار آمریکا گری گنسلر زمانی در کلاسی درباره بیت کوین داشت ادرس میگرد. ستییالومی است که یک سناتور تاز انتخاب شده و علاقه من به بیت کوینه برای کمیته بانکداری سنا انتخاب شده این بدین مع که یکی از مهمتر نهادهای اقتصادی یالت متحده حالا یکی عضوی داره که زمانی درباره بیت کوین این شدورین توییت کرده برای ذخیره ارزش آمدم برای مقاومت به سانسور ماندگار شدم حالا لومیز به وارن داویتسون و بقیه کسانی که در کنگره برای حمایت از بیت کوین سوگند خوردن ملحق شده. بزرگترین حمله که در تاریخ بیت کوین شده، در سال 2017 و در سطح نرم افزاری انجام شد. در بهار آن سال، تعداد شماری از مهمترین بازیگران صنعتی بیت کوین در آن زمان جمع شدند و معاهده نیویورک را امضا کردند. در آن زمان امزا کنندگان که بیشتر از 83 درصد از قدرت ماینینگ دنیا مباهت می‌کردند، 50 شرکت بودند که بیشتر از 20 میلیون گیگاپول داشتند. و سهم قابل توجهی از زیرساخت پرداختی بیت کوین رو در اختیار داشتن. این یک اتحاد بی‌نظیر بین ماینرهای چینی و سیلیکون ولی و وال استریت بود و هدفش این بود که بیت کوین رو طوري تغییر بدن که بتونیم تعداد بیشتری تراکنش بر ثانیه رو پشتیبانی کنیم ولی به چه قیمتی؟ به قیمت قربانی کردن عدم تمرکز و توانایی کاربران برای بررسی تامین مالی از خانه خودشون. علی رغم احتمال کم موفقیت، گروهی از فعالان مردمی حرکتی رو شروع کردن که در پایان به طرز باورنکردنی اتحاد نیویورک رو شکست داد. در نوامبر 2017 نقشه شرکتها تحت عنوان سگویت دو شکست خورد و بیتکوین غیر متمرکز باقی موند. درسه که در این جنگ مقیاس برای همگان برجای موند این بود که نه ماینرها و نه شرکت های بزرگ هیچ بیت کوین متوقف نمیتونن بکنن. بله این درسته که برنامه مین برنامه بیت کوین رو می نویسن و ماینرها تراک ها رو پردازش میکنن اما هزاران هزار کاربره که نوتهاشون رو براندختن اونا هستن که در نهایت تعیین میکنن کدوم تراکنش درسته و کدوم نسخذ در افزار مورد قبولشونه حتی اگر یک دولت بیشتر توان استخراج بیت کوین رو در دست بگیره این امکان رو نخواهد داشت که قوانین پایه هماهنگ بیت کوین رو تغییر بده یا تعداد بیت بیشتری چاپ کنه یا پول هیچکس رو کنه بدترین کاری که میتونن بکنن اینه که توانشون رو برای استخراج یک نسخه متفاوت از بیت کوین استفاده کنن که در اون هم به طرز حیرت انگیزی در پروژه‌های مثل بیت کوین کش و بیت کوین اس شکست خوردن. کار دیگری که میتونن بکنن نه که میلیون‌ها دلار پول رو هدر بدن تا موقتاً به شبکه با حمله‌های 51 درصدی آسی وارد کنن. در صورت چون این اقدامی هم اکثریت ماینرها میتونن با هم همکاری کنند و باعث که این حمله از لحاظ اقتصادی بسیار گرون در حال حاضر قیمت زیرساخت لازم برای چنین حمله‌ای بیشتر از 5 میلیارد دلار خواهد بود حتی اگر دولتی قصد قاصد چنین حمله عجیب و غریبی هم داشته باشه بسیار غیر محتمله که بخواد ظرفیت چند کارخانه تولید نیمه رسانایی که در دنیا وجود دارد رو فقط به این امر نه منطقی اختصاص بده حتی قطعی هم نیست بر همزدن نظم موجود تولید نیمه رسانه‌ها برای آمریکا در شرایط فعلی میتونه منجر به مخاطرات امنیت ملی بشه یک راه حل جایگزین میتونه مصادره تجهیزات ماینینگ یا استخراج باشه با استفاده از یک عملیت نظامی اما آمادگی و پشتیبانی نیاز برای حمله و مصادره تعداد زیادی دستگاه‌های های یا 3 کیلویی که متعلق به افراد ناشناس یا نیمه ناشناس هسته کار بسیار بزرگی میطلبه حاج سکومان درباره راههای دیگیری که میتونیم ببینیم وسیله به بیت کوین حمله کنیم فراونه چند تا از مثالای اون رو اینجا میگیم مثلا اینکه استخراج‌های استخراج‌کن‌ش‌ها را سانسور کنند. کنن ماینر‌هایی ما که در استخراج‌های آزاد هستن پول بیشتر به دست میارن و میتونن سریعا از استخراج‌هایی که سانسور می‌کنن به استخراج‌های آزاد سوئیچ کنن یا حتی نرم‌افزارهایی استفاده کنن که مانع سانسور کردن بشه یا یک قطعی جهانی اینترنتی به وجود بیاریم میتونه مخرب باشه اما نابودکننده نیست یا بعضی‌ها میگن کامپیوترهای کوانتومی رمزنگاری بیت کوین رو شکست میدن بنام گفتگو کارشناسان یک تهدید جدی نیست، جو یعنی اینکه افراد بدنهاد آپدیت های بدی رو در کد بیت کوین وارد کنن که البته این هم در مقابل صدها توسعه دهنده ای که نگهبان خود هیچ شانسی نداره. حقیقت اینه که با وجود همه واهمه هایی که در مورد چگونگی احتمال شکست بیت کوین نش داده میشه، همه کاربران همیشه تونستن تراکنششون رو انجام بدن. تلاش برای تخریب پروتکل یا زیر ساخت شبکه بسیار بسیار سخت و هزینه است و بدون هیچ ضمانتی برای موفقیت همراهه همانطور که در سال 2017 دیدیم حتی اگر قدرت‌ها بتونن اکثریاً یعنی توان محاسباتی شبکه رو یا همون هشریت رو از آن خودشون بکنن باز هم در مقابل معماری مرکز شبکه شکست می‌خورن خیلی تر و خیلی محتمل‌تر حمله مستقیم به خود کاربرانه چندین سناریوی کابوس‌مانند برای بیت کوین وجود داره که پیش‌نیازهای علمی تخیلی مثل همکاری دولت‌های جهانی در یک مأموریتی به سبک مأموریت غیر ممکن برای توقیف و مصادره ها دلار لوازم استخراج بیت کوین نداره یکی از این سناریوها چهار رقمه 6102 در سال 1933 دولت روزویلد قانون اجرایی 6102 رو تصویب کرد که همه شهروندانشون رو از نگهداری طلا من و اونها رو مجبور میکرد که تلاهاشون رو به مقامات رسمی تحویل بدن همین کار رو دولت آمریکا یا سایر دولت‌ها هم می‌تونن انجام بدن که یک دوره زمانی مشخص کنن و به مردمشون التیماتون بدن که بیت کوین‌هایشون رو اظهار کرده و اون رو به دولت بفروشن یا عواقب قضایی مثل زندون رو بپذیرن جامعه بیت کوین از همین حالا داره خودش رو برای چون این حمله آماده می‌کنه یکی از دلایلی که پروژه 610 موفق شد این بود که دولت می‌تونهس به بانک‌هایی که طلا مردم رو نگهداری می‌کنن بره و در همون سرچشمه این نگهداری طلا طلاها رو توقیف بکنه به همین دلیل هر سوم ژانویه 13 یا 14 دیما دارندگان بیت کوین روز اثبات کلید ها رو جشن در این روز یک سنت اینه که بیت کوین ها رو از صرافی ها یا هر اماننداری دیگری که داریم پس بگیریم و در کیف پولی که خودمون میتونیم کنترلش کنیم ذخیره کنیم جمله معروف اگر کلید خصوصی نداری پس کوینی نداری که توسط آندرویاس آنتونوپلس معروف شد اکنون دیگر به شعار جامعه بیت کوین تبدیل شده. حالا که بیشتر از 10 درصد از جامعه آمریکا صاحب بیت کوین هستند، اگر درصد زیادی از صاحبان بیت کوین بیت کوین کوین‌هایشون رو در کیف پول خودشون نگهداری کنن، حمله مثل حمله یک 6602 تأثیر محدودی خواهد داشت. و توجه به اینکه کلید حساب بیت کوین شما معمولاً یک مجموعه 24 تایی از کلماتی که میتونه به هر شکلی مثل یک نگارش تن نگهداری بشه یا حتی به حافظه سپرده بشه. حتی حمله خانه به خانه برای مصادره بیت کوین‌ها هم منطقی نیست، بالعطی یک تجاوز به حقوق بشر مصاب میشه یک تهدید ده قانون‌گذاری دیگر قوانین مالیات بر سود بیت کوین خواهد بود که میتونه های بسیار مخربی برای کسانی که بیت کوین رو برای دراز درازمدت نگهداری میکنن داشته باشه نمونه یعنی دیگر میتونه قوانین بسیار سختگیرانه شناخت مشتری یا همون کیوآیسی باشه که خرید بیت کوین از یک شخص بدون مجوز رو جرم انگاری بکنه چون قوانینی البته موانع بسیاری دارن مثلا متمم اول و چهارم قانون اساسی ایالات متحده و جامعه بزرگی از صنایعی که در مقابل چنین قوانین لابی و مقاومت کرد دولت ها میتونن سعی کنن به روشی بیت کوین رو به کنار بزنن و کم اهمیت کنن مثلا با تولید یک پول دیجیتال مبتنی بر بانک مرکزی بیشتر بانک های مرکزی در حال آزمایش این موضوع هستن که پول های کاغذیشون رو با توکن های جای جایگزین کنن که شهروندانشون بتونن اونها رو از کیف پول های دیجیتالشون همراه داشته باشن مروجان این کار میگن که با این روش میتونیم نیاز جامع بیت کوین رو کنترل بکنیم در نهایت باید پذیرفت که بانک های مرکزی در بستر رو ندارن. چون به طور قطعی نرخ شناوری ارزهای فیاتی که پشتیبان این ارزهای مجازی هستند نسبت به بیت سقوط خواهد کرد و به طب قدرت خرید این ارزهای دیجیتال کاهش خواهد یافت در همین زمان ارزش بیت کوین رو به رشد خواهد بود و همزمان آزادی اقتصادی رو فراهم میکنه که هرگز بانک‌های مرکزی نتونستن با کاربرانشون پیشکش کنن یک محور حمله دیگه میتونه ممنوع کردن عمل استخراج بیتکوین کوین توسط دموکراسی‌ها باشه. امروز مقالات رسانه‌های متعارف بیت کوین رو یک فاجعه محیط زیستی معرفی میکنند. در واقع اما بیت به شدت به منابع تجدیدپذیر متکی هسته بین 39 تا 74 درصد تخمین زده میشه. البته مترجم اینجا توضیح میده که این ادعا نیاز به بررسی بیشتر داره. منابع استاندارد یا اضافی مصرف نکنه و احتمال آینده سبز برای اون بسیار محتمله. اما با در نظر گرفتن هایی که افراد کمه اطلاعات این میبر وجود داره، هر کسی میتونه تصور کنه که در دولت جو بایدن به با عنوان بخشی از معادله جدید سبز، ممکن است استخراج بیت کوین محلول بشه. بزرگترین خطر موجود در زمان حاضر برای کاربران بیت کوین مشکل بیت کوین دوگانه است. اگر 25 صرافی اصلی که در ایالات متحده، اروپا و غرب آسیا حضور دادن با هم همکاری کنند و جلوی برداشت‌های رو بگیرند میتونن به طور موثر شبکه رو به دو بخش تقسیم کنن بخشی از بیت کوین ها در لیست سفید و بخش دیگر که در اختیار اونها نیست در لیست سیاه قرار میگیره این بدین معنی که فعالان تجاری قطعاً بیت کوین ها رو از شما قبول بکنن که در یک لیست خاص باشن در غیر این صورت با احتمال خطر عدم تعویض بیت کوین هاشون در صرافی مواجه میشن این خطر فارغ از که شما چه تلاش کنید که رد مرتبط بودن بیت هایتون رو به لیست سیاه حذ بکنید برای فعالان تجاری وجود خواهد داشت. در این صورت شما مجبور به دنبال کسانه بگردید که حاضرند بیت های شما را بپذیرند چون قوانین این کاربران رو به سمت یک بازار معاملاتی شخص به شخص و همتا به همتا و بدون واسطه رسمی سوق میده. حتی با این وجود موانع بسیار به برثرران چ حمله وجود داره، صرافی ها میلیون ها کاربر و میلیاردها دلار از دست میدم. با توجه به اینکه کاربران اکوسیستم دیفای نیازمند خرید اتریوم از صرافی‌های بزرگ و منتقل کردنشان به پلتفرم‌های مثل یونی‌سواب هستند، احتمالاً کل اکوسیستم درشن شرایط فروخرد ریخت. شرکت‌های تجاری که در این فضا هستن به شدت به هر گونه تغییری که از برداشت‌های بیت کوینی یا هر رمز ارز دیگری توسط شربنارشون جلوگیری بشه، واکنش نشون میدن. همانطور که این مثال نشون میده، راه‌های فراوانی برای حملات قانون‌گذاری به بی شبکه‌ی بیت کوین وجود داره که باید مورد توجه کاربران بیکون باشه. احتمال وقوع این حملات بسیار بیشتر از حمله به رمزنگاری یا به هشرایط شبکه هسته البته حقیقت اینه که تاکنون حملات قانونگذاری بسیاری اتفاق افتاده ولی تاکنون کنون موفقیت چندانی نداشتم در سال 2017 حزب کمونیست چین دسترسی شهروندانش برای مبادله بیتکوین با پول ملی کشور رو محدود کرد مدت کوتای پس از اون دولت هند هم همین کار رو انجام داد و پاکستان و چند کشور دیگه به دنبال این دوتا رفتن به عبارت دیگه دو تن از بزرگترین دولت های دنیا تلاش کردند تا دسترسی مردمانشون به کوین رو در آشکارتر نقطهی ممکن ممنوع کنن این نقطه مکان گردنه تبدیل پول محلی به کوین و برعکس بود این سرافی ها سال اما دادگاه قانون اساسی هند این قانون رو ملغی کرد و بیت کوین در هندوستان دیگر محدود شده نیست. هرچند دولت هندوستان اما باز هم به دلیل تسبب قوانین محدودسازی چیزی برای بیت کوین و همه رمزرز های صادر شده هست که توسط کسی غیر از دولت محلیه. همزمان دولت در تلاش برای ساختن رمزرز ملی هسته توی بانک مرکزی هندوستان. اما با وجود همه اینها استفاده از بیت کوین در حال رشد در چین هم بعد از محدودیت‌های سال 2017 بعضی شرکت‌ها به سایر کشورهای آسیا شرخ ماجرت کردند. البته روابط تجاری خودشون رو با مشتریان چینی حفظ کردند. مثلا دو صرافی بزرگی اوکی کوین و هیوبی دو صرافی بزرگ چینی بودند که هنوز به میلیون‌ها کاربر چینی خدمات میدن در پاکستان هم که بیت کوین به طور رسمی ممنوع شده، به طور غیر رسمی به شکل نمایی در حال رشد است. در نیجریه دولت فعلاً اعلام کرده که حساب‌های بانکی هر شهروندی که بیت کوین خرید و فروش بکنه را می‌بنده. این رژیم قبلا هم های مشابهی رو به کار برسته بود که همگی شکست بردن در نهایت تنها کاری که این سیاست را انجام میدن، راندن شهروندان به بازار مبادلات شخص به شخصه که بسیار غیرقابل کنترلتره. کنترل تره. از طرفی کارآفرینان ریسک‌پذیری که میخوان به هموطنانشون برای داشتن یک سیستم اقتصادی بهتر کمک کنند، در آن سو منتظر کاربران هستند. در ایالات متحدهم اگر حمله دقیقه 90 وزیر اقتصاد می نوچن رو کنار بذاریم باز هم می‌بینیم که روند وزارت بر فعالیت اقتصادی آمریکایی‌ها تحت عنوان قانونی مانند بانک سیکرتری Act رو برشد همراستا با همین روند صرافی‌ها از قوانین و سخیرانه تری برای شناسایی کاربرانشون اعمال کردن و همزمان سقف برداشت هر روز پایین‌تر و پایین‌تر میاد با این وجود تاکنون کون آمریکایی‌ها راحت مونسن بیت کوین بخرن و اونو به کیف پول‌های خودشون منتقل کنن روندی که حالا متحدانم قدرتمندی نیز از, از اون دفاع میکنن سناتور لومیز، نمایندگان کنگره مثل مک امر زوتو، همینطور استاندارانی مثل استاندار میامه فرانچ سوارز، همه با هم اومدن که از بیتکوین حمایت کنند چه از راه قراردادن وایت پیپر بیت در سایتشون، چه با قول اینکه تلاشا برای اعمال قوانین محدود کننده رو دفع میکنن، یا یعنی که قول دادن که در حوزه نفوذ قانونیشان شرایط برای کارآفرینی و خلاقیت مبتنی بر بیت کوین رو فراهم خواهند کرد. برای مثال شهردار سورا تلاش کرده که بعضی از کارمندان شهر میامه بخش از حقوقشون رو با بیت کوین دریافت کنن یا شهروندان بتونن با بیت کوین مالیات و این بیت کوین رو وارد سرمایه‌گذاری شهرداری بکنن. بعضی استدلال میکنن که شرکت‌های بزرگ اقتصادی آمریکایی به بیت حمله خواهند کرد. اما تا حالا اینطور به نظر میاد که شرکت‌های بزرگ بیشتر تلاش کردن که مهمانی بزرگ باشن. در همین جمعه گذشته شرکت‌هایی مثل تسلا، گریه و تعدادی دیگر در حال حالخردن میلیاردها دلار بیت کوین بودن چیزی فراتر از اون که ماینینگ تولید میکنه و همون طور که سرمایهگذاران باوش متوجه شدن بیت کوین رو نمیتونیم از ماهیت سایبر پانکیون جدا کنیم تنها دلیل ارزشمندی بیتکوین بیت کوین عنوان یک دارایی غیر متمرکز بودن اونه که منجر به عدم توانایی هیچ کس در تغییر دادن قوانین اون و چاپ پوله تا به اینجا اینطور به نظر میاد که هر بار که دولتها زنگ کرده بیت کوین محدود کنندن بیشتر باث رواج بیت کوین داخل کشورشون شده. دولت که در تلاش برای کنترل مواد مخدر به طرز مفتزهانه شکست خوردن احتمال برخورد با چنین چیز نامرئی و بیمرز و با قابلیت جابجایی ورای تصورشون رو سخت‌تر خواهند یافت در جوامع مردم سالار دولت‌ها با موانع بزرگی از طرف صنای اقتصادی هم مواجه میشن مهمترین که در این نظام ها برخورد با بیت کوین و محدود کردن اون میتونه با ارزش های مثل آزادی بیان حق محمانگی اطلاعات شخصی و حق مالکیت املا شخصی ناهمخانه ذاتی داشته باشه مصادره بیت ها نیاز به اعمال خشونت هم خواهد داشت و به نظر نمی که دولت های از مردم سالارری جت کار رو داشته باشن در پایان بزرگترین سپر دفاعی بیت کوین ماهیت و ذات طبیعه انسان هاست. ما انسان ها آزمند و خودخواه هستیم و این خصوصیت ها شامل حال دولت میشه همین الان هم بعضی از نوادهای محصول در حال استخراجی بیتکوین هستند و مردم رو به استخراج تشویق میکنند. این پدیده در همه جا از پکن تا کنتاکی تا سیبری و اوکراین فراگیر شده حتی در ایران حتی قیمت بالاتر میره تعداد بیشتر و بیشتری به ارزشمندی بودن بیت کوین به عنوان یک محل ذخیره ارزش مدت و جلوگیری از تورم باور پیدا می‌کنم همان که بعضی از دولت‌هایی که ارزهای ضعیفی داشتند مجبور شدند به سمت دلار بروند در آینده نیز دیگران مجبور به آوری و انباشت بیت کوین خواهند شد این رقابت‌ها در ذات سیاره ماست. چرا یک دولت باید به بیت کوین حمله کنه اونم در زمانی که میتونه از رانت و انحصارش در صنعت انرژی و چاپ پول برای به بیت کوین استفاده کنه ثروتمندان و قدرتمندان همیشه هایی رو طراحی می‌کنن که قبل از همه به خودشون سود برسه. تمام نبوغ بیت کوین در همینه که از این واقعیت استفاده پایه کرده و همه رو مجبور کرده که به جای حمله به سیستم، وارد اون بشن و دلالشونن که اونو به دست بیارن و بهش کمک کنن. در دنیایی که زندگی می‌کنیم و الان قانون گذاران ایالات متحده به صورت دوستانه برخورد و دولت‌های یاغی در حال استخراج بیت کوین هستن و شهروندانشون هم به دنبال یک دارایی غیر هستن، انگیزه ها برای حمله به بیت کوین روز به روز کمتر میشه در پایان تنها راه از بین بردن بیت کوین به وجود اومدن شرایطی که مردم دیگر بهش نیازی نداشته باشند. اگر هیچ کس یک پول مخاوم در برابر بی‌ارزش کردن از طریق تورم، مخاوم به سانسور، بدون نیاز به مجوز و بدون امکان تعویض رو نخواهد. دیگر کسی این شبکه بیت کوین رو با انرژی تغذیه نمی‌کنه و در پایان شبکه خواهد مرد. بله، شاید انسانیت بتونه به تکنولوژی متعالی دیگری برسته که تمام این نیازها رو برطرف کنه. اما تا آن روز بیت کوین هر روز خواهد شد گفت و هر روز پر رونق‌تر خواهد شد. امیدوارم موفق و مؤید باشید. بدرود.